روز به خیل عرض میکنیم انشالله که تاعت و عبادت شما در ماه مبارک رمزان مورد قبول پارکاه الهی واقع شده باشه و انشالله که بهترین تقدیرات رو هم خداوند تعالی برای شما در این ماه مقرر فرمه امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشید و از هر گونه گزند و بلایی هم به لطف الهی نورمان. بحث ما در انشاء طلبی در تمنی بود ارز کردیم که تمنی عبارت است از اینکه متکلم طلب میکنه امری رو که محبوب اما لا یورجا حصوله اما امیدی به حصولش ندارد. محبوبیه که لا یرجا حالا حالای لا یرجا حصوله. یا به دلیل اینه که اصلا محال شمرده میشه این مال کونهی مستحیلند. و یا این مال کونهی ممکنن غیر مطموع فی نیله. یا نه ممکن هست. اتفاق افتاده چیزی که یه بار اتفاق بیفته، بس میتونه اتفاق بیفته. اما غیر مطموع فی نیلهی. تمایی در نیلش وجود ندارد. یعنی این یک میلیاردیوم در مورده جوری که احتمال وقوعش رو در حد صفر می‌دونه. یعنی در واقع میگن یا مستحیل یا مستبعده مستحیل یعنی محال مستبعد یعنی خیلی خیلی بعید پس اما لکونی مستهیلان و اما لکونی مستبعدن ایشون تعبیر از مستبعدن تعبیر کرده ممکنن غیر مطمئن فینایلی است بعد گفتیم لفظی که وضع شده برای این تمنی لایت است بعد هم عنوان کردیم گاهی اوقات میشه به جای اینکه از لایت استفاده کنند گاهی اوقات تملی به واسطه حل یا لو یا لعله صورت میگیره لغرضن بلاغی اونم به خاطر غرض و نکته بلاغی است بعد هم قرز و نکته رو برای شما گفتیم گفتیم در حل و لعلق قرز و نکته عبارت است از این که طرف میخواد بگه درسته این امر مستحیل مستبعده ولی من به خاطر شدت علاقه به اون اونا حالت شدنی ببینم یعنی انقدر نسبت به این موضوع انایت داره مشتاقه که این امر مستحیل یا مستبعد رو به شکل شدنی ببینم و اون رو با حل میگه یا با بگید لعل میگه و در مورد لو اکس بلاغش. یعنی دیگه حتی امید به کاش گفتن هم نداره یعنی مستحیل مستوعده میشه بگه ای کاش ولی این دیگه حتی ای کاش رو هم حال گفتنش رو نداره یعنی یه چیزی ناامید از محال دانستن و مستبعد دانستن و اونه و این هم به این دلیله که لو اصلش برای موردی وضع شده که ممتنعه، یعنی خودش است و نشدنی است. در واقع واقعی که خودش برای مستحیل و مستبعده بهش راضی نشده اونو ورداشته جاش از لو داره استفاده میکنه یعنی نهایت یعنی حتی آرزو هم نمیخوام بکنه آلو. و بناش این شکلی میشه پس بنابراین این این مبحث رو گفتیم و برای خاطر اینکه شما موضوع رو داشته باشید دو تا مثال رو برای شما خوندیم که گفتیم یک و دو باشه مثال یک که ابن رومی گفت رو لیلت اللیل فیهکان شهر و مر نهارو و مر صحابی از کردیم که این حال موردیه که مستحیله و در واقع اون امر محبوبی که لایور جا حصوله هست مستحیله با لیته هم گفته همه چیش حقیقته تمنی خالصه چرا چون میگه که این شبهای ماه مبارک رمضان هر کدومش پشه به اندازه یک ماه و روزش مثل برق بگذره مثل حرکت عبر در آسمان که یه چشت تو میدازی میبینی بادون و بارد به این سرعت بسه. خب این نشده نیست محاله و ایشون هم این آرزو رو کرده چون شبهای ماه رمضان براش خوب بوده روزهاش با قول خودمون سخت بوده گفته شباش هر کدوم بشه یه ماه روزهاش بشه یک دقیقه مثلا بعد در مورد دومین مثالی که بحث کردم که گفتم دو باشه پنج بود که مردم وقتی قارون رو می‌دیدن انقدر ثروت داره میگفتن یا لیتلنا مثل یا قارون یعنی مثل ماعوتی قارون ای کاش خدا به ما هم مثل این چیزی که به قارون داده میداد حالا آیا امکان داره مثل اون چیزی که به قارون داده شده به اینام داده شده بله این امر شدنیه چرا؟ چون اگه قرار بود محال باشه برای قارون هم نمیشود. شد خب همین که یه بار اتفاق افتاده و قارون این رو دارد این نشون میده که این محال نیست خب ولی چقدر احتمال داشته که یه قارون دومی پیدا بشه صفر در حد صفر. لذا اونها با لیته گفتند درست شد؟ و این مثال میشد برای وعی مالکونی ممکنن غیرم مطموع انفی نیدهی یعنی مستبعد با لیت هم گفتن که کلمه خود تمنیست این هم همه چیزش حقیقته اما نوع دوم تمنیه مستهیل نیست مستبعد یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون لنا خبر مقدم لیت مثل اسم معخره لیت است او معمای مصول است یعنی مثلا نظی اوتی یا قارون قانون نا و مفعول دومش که آید سله بوده حذف شده یعنی مثل ما اوتیه قارون خب. این مبحث تمام شد ما سه تا مثال وسط داشتیم که این سه تا مثال رو گفتیم مال اون موردیه که گفتش و لفظ و موضوع تمانی لیتتا اینجا رو گفت بعد گفت فقط بحل ولو بلاغی. این سه تا مثال دو سه چار مال اینه بعد گفتیم چون حل و لعله یه جنس هستن از نظر قرص و لوی جنس پس بنابراین مثال دو همون میشه مثال سه چون یکی یک بود، پنج دو بود، حالا دو میشه سه اینم اینه وقال تعالی فهل لنا من شفا آه و یشق اولنا او تو بحث استفاهم خوندیم که لعی تبروی تمنیم فهل لنا من شفعاء عَفَيَشْ فَعُولَنَا آیا شفیعانی هستن برای ما تا شفاعت کنند برای ما یعنی جهنمی ها میبینند یه عدهی تو جهنم بهشون شفاعت میرسه و اینها از جهنم بیرون میان اینها با اون که میدونن شامل حال اونها نیست اونا حکمشون قطعیه ولی برمی‌دارنم میگه آیا میشه آیا میشه که همچین چیزی برای مام اتفاق بیفته مام یه شفاعه‌ای داشته باشیم برای ما شفاعت کنه خب چرا با لایتا نگفتن که بگن لایتلنا شفاعا افایش فاولنا چرا با لایتا نگفتن با به خاطر شدت احتیاج اینقدر علاقه داشتن که از جهنم خارج بشن اون امر مستحیل را دارن در شکل بگیت شدنی نشون میدن ازش سوال میکنه آیا میشه؟ میشه یه هلچی چیزی اتفاق بیفته ما هم یکی کسانی باشن نجاتمون بدن از این جهنم من شفعا منشمن زاهده است شفعا لفظا مجرور محلن منصوب مبتد... چه لفظا مجرور محلن مرخوع مبتدای معخره لنا خبر مقدمه فیشفعو هم فعل مزاره در جواب طلب استفحام به معنای تمنی منصوب شده به عنه مقدر خب اینم که حل مجازن به جای لیته آمده خوب این شد سه چهار کدوم میشه چهار میشه چهار الان ام چهار میشه چهار و قال آخر منو شاعری دیگری گفته نگاه کنیم اصر بلقطا سرب یعنی دسته آن دسته منظور یعنی دسته پرندگان ها دسته به این معنا. دلست شد که حتی الان به اسکادران هواپیما ها و این هم سرب میگن این دسته هواپیما دسته پرنده گروه پرنده اصر بلقطا قطا جمع قطاته یعنی موقع سندفاره بلدفشین هایی که بسیار وحشی و پوند پروازند میگه ای گروه ای جماعت مرغهای سنگ خاره، پرندگان سنگ خواده ای بندرچین های تیز پرواز همزمزه نداست از زربلغتا این شخص عاشق بوده در کنار نهری نشسته بوده، معشوقش خیلی دور از او، در نقطه دوری بوده بعد نگاه میکرده میدیده که این پرندگان به چه سرعتی از روی این نهر رد میشه میره چون دیگه اینو گفته گفته ای گروه پرندگان حل منی و این رو جناحه الان از سوالی که آخر آخره بید گذاشت تو اینجا حل من یو ای رو ببینید اصلش اینطوریه هل من یوی ای رو نی یو رو نی بینکم اون یوی رو دو مفعولیه مفعول اولش به غرینه افتاده یعنی یو ایرنی یو ای من من موصول است یعنی الذی درست شو خبرش حذف شده یعنی موجودن بینکم سوالم حالا ترجمه کنید هل من آیا کسی که یو آریه دهد قرض دهد به من جناحهو بال خودش رو موجود آن بینکم بین شما هست آیا کسی که بال خودش رو قرض دهد موجود است بین شما به من یک کسی باشه بالشو به من قرض بده بین شما هست این که گفته آیا کسی هست بین شما بال خودش رو به من قرض بده؟ منظورش اینه ای کاش شما کسی بینتون بود این بالی که با این تیز پروازی پرواز میکردید این بال رو به من قرض میداد انگار یه نفر میگه که خب این بالو میگرفتی چیکار میکردی؟ میگه لعلی یه استیناف بیانیه جواب این سوال که میخوای با این بال چیکار کنی؟ حالا میگه کاش من بال داشتم میخوایی با بال چیکار کنی؟ با این بال مرغ سنگ فاره؟ میگه لعلی اتیرو امیدوارم من پرواز کنم الان من به سوی کسی که قد حوی تو یعنی قد حوی توهو یا قد حوی توها که این من معشوقشه به اعتبار لفظش میشه بگی چون من وفعله مزکره میشه به اعتبار میشه بگی تو توهو به اعتبار معناش که معشوقش بذاره معنیس بوده میشه بگی من حوی توه ها حوی تو یعنی احباب تو دوست دارم میشه لعلی اعلام متعلق تعلق و حتی امیدوارم پرواز کنم من یعنی الالتی اللتی، حوی تو قد حوی تو یعنی قد احباب امیدوارم که من بتونم با این بالی که به من قرض میدید به طرف اون معشوق خودم بپرم و برم و به پیش او برسم حالا سوال اینه آیا میشه یک کسی بیاد با بال پرنده قرض بگیره بال دوتا به رو به سرعت بپرد و برود به پیش معشوقه برسد نه مستحیله پس چرا این داشته با حل گفته؟ یعنی لایت لیتمن یا ایر چرا اینطوری نگفته؟ گفته حل چون عاشق و عاشق هیچ امر نشدنی پیش او وجود ندارد لذا پس بنابراین برای اینکه نهایت عشقش رو نشون بده به خاطر اینکه شدت علاقهش رو به اینکه به معشوقش برسه نشون بده به جای لیته داره از حل استفاده آه دیگه نمیگه کاش کسی بود و به من بالی میداد و من میپریدم یا آیا هست؟ یعنی این عمد تو ذهن من شدنیه دارم سوال میکنم یا یعنی همچین کسی هست؟ میاد و بال رو به من بده و من به سوی معشوق خود پرواز کنم حضر بلغت و من یو ای جناه او آیا کسی که آریه دهد بالش را هست وجود داره؟ گفتیم این این شکلی بوده یو ای مفعول اول و خبر به قرینه هست شده آیا کسی که بالش رو به من قرض بده در بین شما هست تا من به سوی اون کسی که دوستش دارم پرواز کنه خب این مبحث هم تمام شد و ما دیدیم مشکلی توش نداره. اما مثال سوم میشه مثال پنجم که به جای لیته از لو استفاده کرده به جای لیته از لو استفاده کرده میگه وخال جریرن، آقای جریر گفته از شعرهای عمویست این آقای جریر میگه وله شبابو این جمله خبریه برای اظهار تحصره وله یعنی عد پشت کرد از شباب یعنی شبابی یعنی اون جوانی که من داشتم اون زلف و فکولی که داشتم و اون جوانی که داشتم من داره با حسرت میگه ای کابش عجب عجب جوانی رفت اون جوانی من رفت شباب حمیدتن ایامهو این حمیدتن حال است از برای اششباب ایامهو فایل حمیدتن حمیدتن یعنی محمودتن فعیل به من و مفعول در حالی که محمود بود ایامش مورد هم بود بهبه و چهچه چه براش بود میگه اون جوانی که اوقاتش بسیار بسیار ستوده بود آه آدم براش بهبه و چهچه میکرد تموم شد رفت حمید تنیا بچی میگه میگه لو کان ازالک یش او یرجه. این لو دیگه عدات شرط نیست اینجا به لایت است. لذا جواب نداره لو کان یعنی لایتا هوکانه کان لو کان یعنی زالکه یعنی زالکه شباب چون جوونی رفته از اسم اشاره دور استفاده کرده لوکان از آلکه یشترا کاش اون جوونی فروخته میشد یعنی آدم میرفت دوباره جوونی رو میخرید لوکان از آلکه یشترا او یرج یا نه اون جوونی خودش برمیگشت آدم نمیرفت بخره بلکه برمیگشت مثلا دندونی که افتاده بود دوباره در می اومد صورت که چروک شده بود دوباره صاف میشد او یرجم میگه کاش اینطور بود حالا میشم چه چیزی؟ نه جوانی رفت دیگه قابل برگشت نیست هر لحظه از زمان از بین رفت معدوم شد دیگه امکان بازگشتش وجود ندارد ام؟ امکان بازگشتش یا آرزوی بشر بوده که به جوانی برگرده دوباره مثلا شاد الان هم این همه با قول خود مطیق جراحی و این همه انواب و اقسام و اینها رو به کارمه به خاطر اینکه به دروغ جوانی از دست رفته رو دوباره به شکل دروغ و مجاز برگردونن آلا. در هر حال میگه لو کانه یعنی لیتکانه لو کانه زالکه یعنی چیه؟ یعنی امید نداشته که جوانی برگرده محاله حتی دیگه با قول خودمون فکرشم به ذهنش نبه حتی اون محال رو براش کاشم نگفته یعنی چرا چون این شعر رو در حسرت گفته دیگه وله شباب گفتیم جمله فوریه برای اظهار تحصره یعنی حسرت میخورده چون میدونسته که همچه چیزی نمیشه گفته حالا محال محال محال, محال ولی میجیم اگه میشد بخری یا برگرده بد نبود درست شد لوقان ازالک یشترا یعنی زالک شباب و یشترا او گرجه یشترا خبر است. پایین میگه از سرب از البته سرب به معنای جماعت دسته هست اما گفتم برای دسته و جماعت پرنده به کارید ولقطا نوان مند تیر یک نوعی از پرندگان یشبه حمام شبیه کبوتر درست و حبیتو یعنی احبابتو خوی یه یعنی احب و خوب خب نگاه کنید بعد یه نکتهی داریم که خواهیم گفت میگه البحث و الامسلت متقدمت و جمعی اوها منبابل انشای تلبی و هزا تعمل درمه من چینش این مطالب رو به هم ریختم که شما بتونید با قواهد 49 و 50 اینو تنظیمش کنید چون پنج نمال اون بید و الامسلت متقدمت و جمعی اوها منبابل انشای تلبی و ازا تعملت المطلوبه فی کل مثال وجدتهو امرن محبوبا اگر دقت کنی در چیزی که طلب شده در هر مثال اونو میابی که امر محبوبیه لا یرجا حصولو که امید به حصولش نیست حالا امید به حصولش نیست ام مالکونهی مستحیلن کمافل امثلت لعبات لعود و این مالکونهی ممکنن غیرمتمو انفی نیلهی کمافل مثال لعود اینشون اومدن این پنج تا این شکلی به قول خودش سورت کرده من اون شکلی سورت کردم که با قواعد جور در بیاد که قشنگ بتونید چیز کنید درست شد با قواعد و اینا خوب دارن ایشون گفتن چهار اولی درست شد اینها همشون مستحیلن درست شد او یه دونه آخر مستبعده مثلا اینطوری آورده درست شد تنظیم کرد در که این چرا چهار تا مستحیل بیاری یه دونه مستوعد بلکه منظور اینه که یه دونه مستوعد آوردی،, آوردی که یک و پنج باشه بعد سه تای دیگه آوردی برای حل و لو و لن خب ام مالکونهی و ام مالکونهی ممکنن غیرمتمون فی نیلهی کما فیلم سال الاخیر و یا ماهاز از ضرب و منال انشاعه به این نوع از انشاع رو بهش میگن تمنی ولعدوات اللتی افادت تمنیه عدواتی که افاده تمنی میکنه درست شد فرعام سلط المتقدمه در مثال های گذشته هیه لیت و حل و لو و لعن عبارت است از لیت و حل و غیر انل اولا افادت خوب اصل الوزن. جواز اینکه اون اولی افاده میکنه با اصل وضع لیتا یعنی اصلا وضع شده برای تمانی اما سلاس الاخرا اما ستای دیگه حل و لو اینا ما رو چیزای دیگه هم حل برای استفامه لعله برای ترجیه لو برای شرط ممتنه خب این رو مجازن ما میاریم جای لیتا بکاریم اما سلاس الاخرا فا این نها اصطع منت فی هل لطار فبلافیته. برای نکاتی که بلاغی چون مجازه پس بنابرای حتما نکته داره که ما به طرفش رفتیم اونم نکته بلاغی که ما گفتیم حازا حازا یعنی نقطه سرخد یعنی بحث تمام شد درست شد یعنی خوزا این مطالبی رو که گفتیم بگیر اصل بحث تمنی تمام حاز ها, ها اسم فعل و زا اسم اشاره است مفعولشه یعنی خوزا اینو بگیر نگرد سرخد مطلب تمام مطلب جدید میخواد بگه یعنی در واقع نقطه سر خط الان میخواد به مناسبت به مناسبت یه بحثی رو در ترجی بکنه اگر یادتون باشه اول بحث انشاء و اخبار ما ترجی رو جزء انشاعات غیر طلبی دونستیم انشاعات غیر طلبی ترجی رو اینجا به خاطر یه مناسبتی میاد ترجی رو بحثش رو میکنه چون یه به قول خودمون نکاتی توش هست برای اینکه اون نکات رو شما متوجه بشید بحث ترجی. ترجی بحثش جزء بحث تمنی بگید نیست بحثش بحثه بگون این غیر تلبیست مثل قسم مثل نظر مثل سیاق عقود و مدخوزم که اول بحث کنید حالا نگاه کنید بیایید توی پنجاه و یک الان میفهمید واسه چی این محصولای میگه می ازاکانه الامر المحبوب زمانی که اون امری که محبوبه و متکلم میخواد طلب کنه ازاکان الامر المحبوب به مایور جاهوسول از چیزایی باشه که شدنی هم هست به اتفاق میفته خب درس خونده موقعیتش هم با قول خودمون خوب بوده احتمال قبول شدنش هم زیاد این باید بگه امیدوارم قبول شم دیگه بگه کاش که. اذا کانه العمر المحبوب مما جا حصوله از مواردی باشه که امید به حصولش هست کانه طلبه ترجیم طلبش میشه چی؟ ترجی خدا میگه یا ایهاللزین آمنو، کتب علیکم کم سیام آهای مومنین روزه بر شما واجب شده کما کتب علی الذین من قبل کو همونطور که بر ادیان گذشته واجب بوده و پیروانش روزه می گرفتن. یعنی امر خداوند احکامش از احکامیه که از احکام اولیه است نماز و روزه کوت علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل بعد میگه لعلکم تتقون لعلکم تتقون یعنی چی؟ یعنی به امید اینکه شما تقوا پیدا کنید روزه برای پیدا کردن تقواست متقی شدن تمرین برای اینه که شما از محارم و آنچه که حرام است و شایسته نیست دوری کنید و آنچه که خوب است و خدا هستد معنویت هست نزدیک بشید لعلکم تتقوا قوین متقی شدن امر بدیه نه امر خوبیه محبوب. آیا احتمال حصولش هست بله بله احتمال حصولش هست خیلی هم زیاد. طلبش میشه تردی به این امید که شما متقی کردید درست شد حالا لله یادتون باشه تو انشار غیر طلبی اول بحثم کندید. دو تا حرف داره دو تا حرف دو تا حرف برای دو تا حرف برای ترجیه هست یعنی حرف اصلی یکیش لعله است، یکیش اصا بروش شد؟ یکیش اصا اصا رب بکم ان یرحمکم اصا رب ان یرحمکم یعنی چی؟ یعنی امید از پروردگار شما به شما لطف کنه. حالا آیا این محبوب هست یا یعنی نه که پروردگار بر ما لطف کنه. رحمت داشته بله محبوب. آیا احتمال حصولش هست یا نه بله. بسیار لذا گفته چیه. اصا رب بکن؟ ان یر همکم. اسمش. ان یر همکم میگه و یعب برو فیه فیهه میخوره به ترجیه در این ترجیه عبارت آورده میشه تعبیر میشه در این ترجیه با یا اصلا ترجیه رو یا با لعله یا بکنن یا با اصلا که من بیان کردم لعله کن تتقون اصلا رب بکن ان یرها مکن این این اصلا بحث به قول خودمون ترجیه مال انشاء غیر طلبیه تعریفشو گفتیم کلماتی که باهاش میاد رو گفت اما نگاه کنید این نکته نکته یکی که اینجا میخواییم بیان کنیم این باعث شده که این بحثو اینجا بکنیم میگه وقت توست عملو فیه فیهه یعنی در ترجی لیته لخر از گاهی اوقات گاهی اوقات گاهی اوقات, گاهی اوقات. در ترجی لیته طرف به کار میبره گایی اوقات در ترجی لیته به کار میبره لقر از این بلاغیه به خاطر نکتهی بلاغی با ما ترجیه شدنی خیلی هم زیاده جای آوردن لعله بوده یا عصا بوده اما این شخص لیته استفاده میکنه چرا؟ در تمنی هاور میداره میاره می تو ترجی. لخر از این بلاقی به خاطر نکته بلاغی. اون نکته بلاغیش چیه؟ اون نکته بلاغیش اینه میگه درسته این ام شدنیه. احتمالش هم زیاده. محبوبم هست. ترجی هم هست. تو راست میگه. ولی برای من آه برای من به شکل نشدنی شده. برای من به شکل بگید نشدنی شده من امیدم کم شده یعنی درسته که این محبوب منما یرجا حسول ولی برای من شده پیش من که رسیده شده محبوب منما لا یرجا برای همین من از درست عکس اون که ما لعله رو برده بودیم تو تمنی به کار می آن که می گفت تو ذهنم این امر شدنی شده و من به جای لعله دارم از لعله استفاده میکنم و حل اینجا عکس شد مثل یه کلاسی همه درس میخونم امتحانم میدن قبولم میشه. حالا قبول شدن عمر محبوب هست یا نه؟ بله منبایور جا حصوله هست؟ بله اما یه نفر از نخونده وقت رو گذرونده نخونده حالا میخواد بیاد امتحان بده احتمال قبول شدن کمه نه میخونن قبول میشن یه از مواردی نیستش که بگیم یک دیومه نه گاهی کلاس همشون قبول شد. اما این آدم به دلیل اینکه خودش نخونده این امر شدنی براش بگیر به حالت نشدنی در آمده. مستوعت در لذا این به جایی که بگه لعن ناجه امیدوارم قبول بشن میگه لیتنی ناجه اینجا ما میفهمیم قبول شدن رو شدنیه این ترجیه اما از اون لعی که آورده و گفته ما میفهمیم که یعنی میخواد بگه که من تو ذهنم بهش امیدی ندارم پیش من نشدنی شده آه اینه میگه فقط پوه عملفیه و, و گاهی استعمال میشه در این ترجیب لیته ل از این بلاقی قرضش هم گفتیم پایین نگاه کنین قرضش تو شیدداد. ال قرضو هو ابراز مرج قرض عبارت هست است ابراز و ظاهر کردن اون چیزی که امید بهش هست و شدنیه؟ اونو ظاهر میکنه فی صورت المستحیل یا فی صورت المستبعد اونو به شکل مستحیل و مستبعد نشون میده مبالغتا فی بوده نیدی به جهت اینکه که مبالغه کنه در به دست آوازش که این ام برای من یه مقداری نشدنی شد مبالغتا فی بوده نید. الگرس و حوه ابراز المرجع فی صورت المستحیله مبالغتا فی بعد نیله به جهت مبالقه حالا یاد گرفتید نگاه کنید یاد چیز خاصی نداری میگه و اعضا المطلوب و المحبوب و ممکنه حالا اگر مطلوب محبوب ممکنه مطموعن فی حصوله طرف هم تمهی در حصولش داره مثل علکم تدقون مثل عصا رب بکن این یرحمکم شدنیه و امید به شدنش هم بسیار زیاد کان طلبو ترچیه طلبش ترچیه و عداتی هم که به کار میره لاله هستو و لاله هستو هست مثل لعله کم مثل عصا رب بکن یرحمکم و یعبر و فیهه به و عصا. درش تعبیر به لعله و عصا میشه این میشه ترجی و ترجی هم جز انشاعات غیر است. اما وقت تستعمل عمل و لیته اما گایی اوقات در همین ترجی متکلم از لیته استفاده میکنه به جای لعله و عصا چرا؟ لسبب یقصد و هو الولیق به خاطر سببی که یک بلیق کسی که بلاغت در کلام دارد به خاطر سببی که یک بلیغ یعنی کسی که بلاغت در کلام دارد قرز و قصدی که او دارد سبب شده که چنین کند به یعنی لغر از این یقصدوه الولید کما فی قول عبدتیب مثل قول این آقای عبدتیب متنبی نگاه کنیم ببینیم میگه فیا لیت قاعدتا بعد میگفته لعل ولی گفته لیت حالا ببینیم میگه فیا لیت یعنی یا گفتیم یا حرف تنبیهه یعنی علا لیتا که این بیشتر به کار میره یا حرف نداس یعنی یا قومه ای قوم من درست میگه فیال لیتا ما بینی و بین اهبتی اهبه جمع حبیبه یعنی محبوب یعنی اونایی که دوستشون دارن من البعده مابیدی و بین المصائب جمع مصیبت میگه مصیبت از سر و کول من داره میره بالا او. گرفتاری همه نوعش یقه من گرفته از سر و کولم میره بالا کاش حالا من هم ترجمه میکنم کاش آنچه بین من و بین اونهایی که دوستشون دارم و پیشم نیستم اهب من البود کاش بین من و بین اون کسانی که دوستشون دارم از لحاظ دوری از این لحاظ دوری کاش آنچه بین من و بین محبوبانم هست از دوری چیزی بود که بین من و بین مصیبت هست یعنی مصیبت از سر و کولم داره میره بالا کاش به جای این مصیبت‌ها که داره از سر و کولم میره بالا ها این محبوب ها اونهایی که من دوستشون دارم علاق بهشون هستن چیزایی که دلم میخواد اینطور به من نزدیک بودن کاش فاصله ای که بین من و این معشوقام هست بین من و مسیبت بود یعنی چی؟ یعنی مسیبت هم کاش لعنقل اندازه اونا دور بودن الان چه فاصله افتده بین من و اون چیزایی که میخوام کاش این فاصله فاصله ای بود بین من بگو و بعد وقتی هم اونا این فرقدار از من دور بودن حالا آیا این ام شدنی است که کسی اون چیزایی رو که میخواد بهش نزدیک باشه؟ بل. آیا این اف شدنیست که مصیبت و بلایا از کسی دور باشه فاصله داشته شده؟ نیست؟ شدنیست زیادم هست خیلی آزادم هست. ها هستند که مصیبت و بلا باشون فاصله زیاد داره و خیلی هم هستن که اون چی که میخوان بهش محبوب ها و اونهایی رو که بهشون علاقه دارن در کنارشون هست ای شدنیه و خیلی هم اتفاق میفته مثل مثلا فرض کنید که ثروت قارون نیستش که یه دونه. اما متنبی میگه من تا از اون ماه که چشم با کردم میبینم مصیبت ها کت و کولم میره بالا و هر چیم که دلم میخواد نیست میگم کاش به جای این که فاصله بین من و معشوقهام هام و بین من و محبوب هام هست فاصله بین من و مصیبتهام هام بود من دیگه اینجا باید کاش میدم فیا لیت ما بینی و بین احباتی منال بُعده ما بینی و بین المسائل کاش فاصله‌ای که بین من و اونایی که دوستشون دارم می‌خوام هست از دوری این فاصله بین من و اونایی که مصیبت ها بود اونها اینقدر از من دور بودن اینکه مصیبت دور باشم رو شدنی خیلی کسان هم هستند اما متنبی میگه چی؟ میگه من از اون چشم رو وا کردم متاسفانه مسیبت کتکولم میره بالا درست شد؟ پس بنابراین داره با لیتن میکرد میگه من همچین امیدی ندارم تا حالا این امر شدنی برای من نشدنی بوده لذا من امیدم ضعیف شده به جایی که لعله کار ببرم آه. که بگم شاید بشه روزی که مصیبتها هم فاصله با من بگیرن. به جای که بگم شاید میگم ای کاش قشنگ بود. فیا لیت ما بینی و بین احبتی ملال بوده ما بینی و بینن مثال. مای اول اسم لیت است مای دوم خبرش. اون ملال بوده هم من بیانیه است. آنچه بین من و بین احبه و محبوبان من هست منظور یعنی چی؟ آنچه بین من و بین اونهاست میگه منظور یعنی بعد و دوری این بعد و دوری بین من بود و بین مصیبت ها اون بینی اول متعلق به استقره مقدره سله ماست این بینی دوام ما بینی این هم متعلق به یه دیگری سله این مایه دوم و این منالبود هم از نظر ترکیبی متعلق به عامل آمل مقدر حال هست من حال از برای اون فایل که بینی بهش متعلق احبتی عط شده به جای یای بینی از مساحب عط شده به جای یای بینی دوم و اگر ما به زمیر مجرور عطف کنیم باید اون جردهنده رو تکرار کنیم لذاب بین برابر دوم تکرار درست شد؟ این هم نکات ادبی بود که تو این بیت وجود داشت برای که بتونیم بفرد خب مبخص تمام یعنی بحثی که ما مفاستیم عنوان بکنیم و شما بفهمید ازش توی امر تمنی کامل به طور جامع بیان شد حالا بیایم سر بقول خودمون نمونه ها که چند تا رو بخونیم که مقدار بیشتر براتون تمرین بشه نماز لبیان ما فعل انسلت لعاتیت من تمنن او ترجل. برای بیان آن چه در مثال های آینده هست از تمنی و ترجی. اون که از تمنی است، ترجی است شما ببینید بکید و تعیین العداد فی کل مثاله و هر عدادی رو در هر مثالی بیان کنید و تعیین العداد فی كل مثاله خب نموزش لبیان مافل امثلت من تملن او ترج و تعین العداد بی گل نسا قال سریع قوانی خب سریع فعیل به معنای مسروعه سرعه یعنی زمینش زد کشتش به قوانی جمع قانیه است یعنی زیباروی این لقب این شاعر جای ترجمش کنی میشه کشته مرده زیبارویان سریع القوانی این شاعر قاعدتاً غزل هم هست به لقب سریع القوانی درست شد این شعر رو گفته این لقب رو است میگه واهند واهند اسم فعله یعنی اتعجبه واهند اسم فعله یعنی اتعجبه واهند ایام سبا سبا یعنی دوران جوانی دوران اشقه عاشقی میگه واهن لعیان سو. تعجب میکنم وای وای اون دوران جوانی واهن لعیان سو. و زمانی اون عهد جوانی و اوقاتش بهبهش جوانی زمانی داشت و جعیانش پس این الان دیگه جوان نیست درست شد و الان تو پیری دهان شاف افتاده به دوران جوانی و زمان جوانیش میگه که من تحجب میکنم حسرت میخورم نسبت به جوانی و زمانش خب واحن ایام سبا و جوان واحن لعیان. سبا و زمانهی. بعد میگه لکان اصعف بالمقام غلیلا بالمقام یعنی اقامته غلیلا یعنی زمنا غلیلا اصعف یعنی اعانه یاری می کرد یعنی اصعف بالمقام یعنی اقامته غلیلا یعنی زمنا غلیلا یعنی لوکان این سباه کاش این جوانی از افه بالمقام کمک میکرد منو به موندن زمناً قدیلن یه با. چند روزی یه چند روزی دوباره این جوونی دست ما رو میکرفت و ما رو یاری میکرد از افه گفتیم یعنی اصلا سیاره طول اصاف یعنی آمبولانس لوکان اصعفه به مقامه غلیلا کاش یه بهقول خودمون زمان کم دیگهی به ما لطف میکرد و اقامت داشت خلا میشده چه دوباره میاد و یه چند سباهی با این آقا همراهی کنیم نه پس امر نشدنی مستحیل حالا این مستحیلو چرا ایشون با لونشون نشون داده چون مخواسته بگه که با اون واهنش که گفته که تعجب کرده و اظهار تحسر کرده یعنی دیگه من حتی ای کاشم برای اینکه جوونی بگم کاش جوانی دوباره تکرار میشد کاش هم دیگه نمیگم چون میدونم دیگه کاش گفتن هم غلطه یعنی دستش رو شد سو رو زشده یعنی حتی اون امر نشدنی را ها میخواد به شکل ممتنع نشون بده اومده از لو استفاده کرد. لو کان از افبل مقامه دلیل ها. این مثل تو اون امثله مثل مثال سبون میشه که اون گفت وله شباب جوانی رد از رد گفت میدونست دیگه نمیشه دیگه حتی شاید گفتن کاش گفتن هم برایش نمیخواست بگه اللو استفاده کنه اینم هم همینطور میگه واهن کلمت و تعجبه کلمه تعجب است؟ درست شد. گفتیم اسم فعله تقولها ازا تعجبت هم بشه اینو میگی موقعی که از خوبی یه چیزی که پس تعجب می‌کنه. چون شو فمعنا واهن سبا معنای واهن لا سبا اینه ما عطیبه. چقدر جوونی خوب بود. به به تعجب از این جوونی و زمانش. خوب این رفته اینم امیده دیگه به اینکه دوباره برگرده. که نداره ها حتی مستحیل هم میخواد نشونش نده برمیگرده با لو میگه میگه لو از اسعف بالمقام قلیل کاش اسعف یعنی اسعفنی کاش کمک کرد من رو این جوونی آ کاش هم نگفته با لو گفته حالا ما کاش ترجمه می‌کنی درست شد موندن یه قلیلن این قلیلن یعنی زمنن قلیلا به اسطلاح آقایون ظرفه برای از افر. اما صفت جای موصوف نشسته به زمنن قلیلن ظرفه خب این مال این حالا ببینیم ایشون چی گفته گفته اد تمنی راستگفت تمنیه لو آورده چرا؟ لأن المطلوبه هنها ممکن قیدادی بیتار مطلوب اینجا ممکنه از نظر شما آ؟ غیر ممکنه لعن المطلوبه هنها غیر ممکنه اما غیر و مطموع حصوله غیر ممکنیه که هیچ طمعی در حصولش هم نداشته. اصلا نمیخواست کاشم برش بدیده بچو اینطوره دیگه لانال مطلوبه مطلوب اینجا اینکه جوونی برگرده و یه مدتی کمی آقایی کنه و بمونه این مطلوب در اینجا غیر ممکنه پس ممکن نیست و این همچون میدونسته غیر ممکن نیست و از دستش رفته بوده ها دیگه نخواسته حتی کاشم بگه چون داشته حسرت می‌خورد نخواسته کاشم بگه برداشته این رو با لو گفته ده این رو مطموع انفی نگید این باله لو پس مثال اول رو توی نموزجمون به غلط معنا کرد درست و شما این رو فهمید بریم سر دومی وقال ابو جناب آقای ابو متنبی گفته ابو متنبی میگه فلایت اول احبت کان عدلا فهم بلا قلب ما عطاقه قد ما عطا قا یعنی ايش میگه فلیت هول احبت احبه جمع حبیب یعنی محبوب ای کاش اشق معشوقه ها محبوب ها کان عدلا ای کاش این عشق عادل بود عادل یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی سر جای خودش یعنی جبوتر و کبوتر باز با باز کند هم با هم جنس میگه کاش بین عاشق و معشوق ها بین احبه عشق عادلانه رفتار کرد علاقه عشق عادلانه هر کسی نسبت به کسی که کف به دست اول آقایان همتای اوست علاقمندی خوبی و سلام علیک میکردن خیلی راحت هم با هم دیگه میرسیدند و زندگی میکردن حالا آیا این شکلی میشه یا یعنی میشه بله الان هم از صد تا بلکه هزار تا مطلبی که اتفاق میابده هم جنسند هم یکی میشه حالا لیلی و مجموع شیرمه فرهادی که یه طبقه یکی که دیگه امر نشدن میشه داستان میشه بله بعدش همه مردم درن که بوتر با که بوتر باز با باز حرکت میکنه. نظام که ای کاش عشق محبوب ها حبیب ها کان عدلن یعنی کان عادلن. اینجا مستر به من اسم فایل. کان عدل. میگه ای کاش عشق بین عاشق و معشوق ها عادل بود. خب چیکار میکرد اگه عادل بود؟ فهم بلک کل قلبن ما اتاقه یعنی ما اتاقه بود. عطاقه, عطاقه یوتی رو یعنی طاقت شده داشت. شد. همبلد و مفعولیه کل قلبه مفعول اول ما مفعول دو پس تحمیر میکرد عشق. بار میزد این عشق. به هر قلبی. این قلب عاشقی. ما عطاقه او، اون چرا که طاقتشو داشت. میامد. عشق کسی رو در دل کسی مینداخت که بگو. طاقتشو داشت. تا میرفت بهش میدادن دو مشکل هم و نمی آمد به گونه ای باشد که نشدنی بشه و داستان پیش بیاید فهم کل لقلبین ما عطا حالا آیا اینکه عشق عادلانه رفتار کند این امر امر نشدنی نه مستحیل نه مستبعد نه بین حبیب ها بین آشغ و معشوق ها اونهایی که به هم میرسند و زندگی میکنند 99 درصدش 98 درصدش همین اتفاق داریم میفتن درست شد؟ نیکی دو درصد از که نمیشه دیگه اما چرا آقای متنبی آمده این امر شدنی رو با لیتا گفته به دلیل اینکه میخواد بگه که پیش من نشدنی شده برای من اتفاق نیفتید برای همین بگو من امیدی به او ندارم یعنی پیش من نشدنی است این مثل همون شعر کتاب خودشه. به صفحه قبل که فیا لیت ما بینی و بین احبتی مثل هم. اگر لایت به کار برده در ترجی برای خاطر که میخواد بگه این امر شدنی پیش من به شکل نشدنی شده. حالا نگاه کنیم است، ترجی عداتی که به کار برده است. چرا؟ میگه لعن نلمطلوبه هنا ممکن متموع در اینجا ممکنه بله اون که اشقاللان رفتار کند ممکنه است بله ممکن. اما متموع انفی حصوله یا غیر و متموع انفی غیر و فی انفی حصوله چرا غیر متموع انفی حصوله؟ چرا اینکه با اونکه که ترجیه و ممکنه تمهی در حصولش نداره به دلیلی که با لعیته ها برده با لایتا بیان کرده وقتی با لایتا بیان کرده نشون میده که تمهی در حصولش نداره تمهی در حصولش پس این هم باز ناجور نوشته باید بگه لعن در مطلوبه ممکنه پس ترجیه اگه ترجیه باید تمه در حصولش داشته باشه میگه لیته کار برده شده لیه رو مطموع فی حصول تمهی در حصولش نداشته پیش او این امر شدنی نشدنی شده بوده لذا از لیته است خوب اینم مال سوامی رو نگاه کنید. جهنمی ها توی جهنم حکم قطعی بهشون میدن و میفرستنشون جهنم. میفهمن که اول خودمون دیگه اون تو دائمی هست. بیرون بیام نیستن نزا بر میگردن میگن که قالت آقا از زبان اهل جهنم فحل الی خروج من سبیل من زاید است برای تحکیم. یعنی حل الاخروجن سبیلون الاخروجن خبر مقدم سبیلون مبتده میگن آیا فرای در رفتن از این جهنم خارج شدن از این جهنم راهی هست؟ آیا برای خارج شدن از این جهنم راهی وجود داره؟ خوب اینا که میدونستن راهی نداره حکم خدا هم تغییر ناپذیره اینها هم تو جهنم موندنیه بعد گفتن لایت الیخروج جن سبیلا چرا با لایت نگفتن با حل گفتن مجازن حل آوردن جای لایت چرا به خاطر شدت اشتیاق اینقدر دوست داشتن که از جهنم برن بیرون و از اونجا خارج بشن که این امر نشدنی را در صورت شدنی نشوندن مثل اون مثال کتاب امسل که از قرآن مثال زد مثال دوم هل لنا من و یشفعو نم به دلیل شدت علاقی که داشتند این مسئله نشدنی را به شکل شدنی نشون دادن و با استفهام بیان کردن نه با لیته ولی می خارج شدن از جهنم ممکن نیست مستحیله اما این مستحیل را با حل بردن تا به شکل بگید شدنی نشونش بده. چرا؟ چون تمه در حصولش داشتن؟ چون تمه در حصولش بشتن, بشتن. فهمیدیم شاید نگاه خودم اینویشون چه؟ میگه, میگه تمنیه خب درست تمنیه اما عداتش حله چرا؟ میگه لعنه مطلوبه اونا ممکن ممکن یا غیر ممکن غیر ممکن حسن تا جهنم بیرون بیرن تمنیه غیر ممکنه مطلوب هنا اونا غیر ممکن آیا تمه داشتن در نه نه نه. یعنی در این غیر ممکن تمه داشتن یا نه بله چون تمه داشتن حل به کار بردن پس میشه مطموع اون فی حصوله یا تمه کاذبی در حصولش داشتن آه. به خاطر همین تمه کاذبشون باعث شد که لیتر رو به جای اون حل به کار بردن حل رو بیارن جاشون پس این مطلوب در اینجا غیر ممکنه خارج شدن از جهنم ممکن نیست پس این مستحیله میشه تمه خب باید لیتا به کار ببرند چرا حل به کار بردند؟ چون طبعه در حصولش داشتند علاقه در حصولش داشتند این باعث شد که بگید اینها به جای این که به کار ببرند حل به کار ببرند اینم باز صحیح ننوشته است اینجا خب من یکی دوتا مثال هم برای شما از تمرین حل میکنم که حالا شما هم یه نگاهی بهش داشته باشید تا به قول خودمون یه مقداری بیشتر حل کرده باشیم و تا یه حدی به قول خودمون تمرینمون بیشتر شده باشه شما راحتتر بتونید مبحثتون رو خد توی تمرین ها کنید من یکی دو تا حالا براتون میخونم برای خاطر اینکه یه ذره بیشتر تمرین کرده باشیم مثلا تمرین یک تمریناتش دو رو میخونم نگاه کنید میگه فلیت تقال عبو فی رسای اخت سیف دولت آقای عبو گفته در مرسیه خواهر سیف دوله خوهر سیف مرده برای اون مرسیه گفته میدونید که انسان کریم انسان زیبا انسان شریف رو تشبیه به خورشید میکنن مخصوصا خانم اینو میدونید دو استاررا ها خوندیم. میگه فلیت تا طالعت الشمسین قائی ای کاش طلوع کننده دو خورشید ما دو تا خورشید میگه داشتیم یکی خواهر س و دوله خورشید مجازی یکی هم خورشید آسمون. امروز صبح که بلند شدیم این خورشید آسمون طلوع کرد اما خورشید زمینی ما که خواهر سفوت بود طلو نکرد مرد. میگه فلیت طالعت شم سین قائتون ای کاش تلو کننده این دو خورشید طلو نکرده بود قایب کاش خورشید آسمان طلو نمیکرد. ولیت قائب و تشم لم تققلی و کاش، اون خورشیدی که امروز غروب کرد و طلوع نکرد مرد یعنی خواهر سیف الدوله لم تقیبی او نمرده یعنی گفته کاش به جای خورشید که طلوع کرد خوهر سیف الدوله طلوع کرد. و کاش به جای این خوهر سیف که مرد کاش به جای خواهر سیف الدوله که مرد می آمد و این خورشید آسمان میمرد خورشید آسمان می, مرد. خرشید آسمان می مرد. ولی تقاائبتش شممسین لم نگاه کنید میگه جعل المرسیت و شمسن نهاره شمسین قرار داده اون خانم رو که مسیاش گفته. و خورشید آسمان رو دو خورشید اینا رو دو تا خورشید کرده یکیش حقیقی و دیگری مجازی یغول لیتت طالعتم من هاتین ای کاش اونی که طوللو کرده از این دو تا خورشید من هاتین تینش و هیه شمسون نهاره و اون هم خورشید روزگاره درست شد قائ کاش این قلب لایتت از من هاتین شمسینه و یه شمسون نهار قائبت. و لایتغاائبت و کاش اون که قائب من هما از این دوتا و یه المسییت و, و اون همون کسی که ما اینمرسییت رو میگیم خواهر سیف الدوله لم تقیم او غیبت نکرده بود او از دنیا نرفت یوری رو انها کانات امبد. میگه که منظورش اینه که خواهر سیف و دوله کانت اعما نفعن منشمس چرا گفته کاشین طولو میکرد و نمیکرد مبالغه کرده یه کارش مبالغه است که این خانم نفعش از خورشید بگیر بیشتر بود یورید و انها کانت اعما نفعن منشمس فلایتها بقیت یورید و انها کانت اعما نفعن منشمسه فلیتها بقیت و فقط نه شمس و فقط نه از شمسه. کاش این خانم می ماند فلیتها برید و فقط نه از و ما خورشید آسمان را از دست میدادیم. خوب خب حالا به نظر شما این چیه یه عم شدنیه نه است. تمه در حصولش هست نه مستحیله لایت هم به کار برده در هر دو جا همه چیش در جای خودشه یعنی اگر بخواهیم ما این رو مطابقت بدیم با بحث امثله تمنیمون مثل مثال 1 میشه لایت اللیل فیه کان شهر و مل النهاره مرر سحاب خب این رو دیدیم و بیان کرد بیا مثال 4 امش رو برای قرآن من برای شما بیان کنم اون امینه قال الله تعالی خدای تعالی فرموده یا حامان از قول موسا میگه هامان وزیر موساست میگه موسا به حامان گفت یا هامان ای هامان ابن لی سرحن بساز برای من کاخی کاخ یک کاخ بلندی رو بساز که از دور دیده بشه، سراحتش چه یعنی برج برام بساز، سرخمشون برج. یک برجی برای من بنا کن. خود این ابن لی سرهن رو ما دو سابق خوندیم که این مجازه آن چون هامان سبب هامان که خودش نترافت دست به گل و سنگ بزنه و برج بسازه. اینکه گفته ای هامان به وزیر خودش برج برای من بساز یعنی تو دستور بده تو سبب باش تا برج ساخته بشه مجاز عقلی است مثل نادر شاه هندوستان را فتح کرد ای بساز برای من برج او می‌خواست چیکار کنه با این برج لعلی ابلغ یعنی اسبابه اسبابه یعنی اسباب تا من بالا برم پله های اشرا و سماوات، پله آسمان رو بعد دنبالش داره فعل عاله اله موسی کس اونم نه رو بود اله موسی پس اطلاع پیدا کنم به خدای موسی یعنی ای ها رو برای من یک کاخ بساز من برم موسا میگه خدای من تو آسمانه برای من یک کاخ بساز من پله های اون رو برم بالا پله های آسمان رو در نوردن برم ببینم که خدای موسی در آسمان هست یا نه چون دنبالش هم میگه فحتل الا اله موسا تا اطلاع پیدا کنم بر خدای موسی نگاه کنید این که او براش یه برجی بسازه اصلا فرض کنید به سه برج میلاد بشه آه. و این پله هاش هم بگیره و بره بالا و در آسمان خدای موسی رو ببینه ببینه هست یا نیست فعدتل های اله اله میشه. آیا این شدنیه مویشه آدم با چند تا پله بره بالا و خدای موسا رو در آسمان ببینه نه این لعله لعلی ابلغوی مهد مگفت لیتن لیتنی ابلغو الاسبال کاش بتونم با بالا رفتن از اون به خدای موسی اطلاع. من خب چرا لعله به دلیل اینکه که خودمون خیلی علاقمند بوده که همچین چیزی بشه از سر علاقه بوده به این که چیزی بشه و خدای موسا رو ببینه آمده از لعله استفاده کنید درست شد؟ آمده از لعله استفاده مثل اون مثال چهاروم همسل است که لعلی الامن قد حوید و عدیر. یا خودش رو ات درقل علاقه مند نشون داده برای اینکه سر مردم رو کلاه بذاره با لعله نکنه بله امر امر است کسی بالای بامی برود و در آسمان خدای موسی را ببین امر امر ولی چرا او آمده با لعلا گفته و با لعیتنه گفته چون علاقمند بوده که این را به شکل شدنی نشون بده درست شد یا حداقل این بوده که علاقمند ظاهری خودشو نشون بده ده. که سر مردم کلاه بذاره که ببین مردم من میرم بالا روی این برچ باز هم خدای اون رو نمید. پنج پنجشو نگاه کن باز است جهنمی ها توی جهنم میفهمن که از اونجا بیرون بیا نیستن نمیشه از اونجا بیان بیرون امکان امکانمدن بیرون نیست برمیگردند با حسرت و اندوه اینطور میگن. فلو اندلنا کر وطن کرتن, کرتن یعنی رجع کرتن یعنی رجعتن کرتن یعنی رجعت میگه فلو انلنا کرتن یعنی رجعتا مستر فعله برای مرس که یعنی اگر برای مایه برگشتن به دنیا بود اگر برای مایه بازگشته به دنیا بود فنکون امیل المومنین فعل مزاره در جواب طلب منصوب به ان مقدره شده حتما از مؤمنین می شدیم حتما ایمان می آورد این کار خوب می کرد تو جهنم می گن اینا خب حالا مگه برگشتنه به دنیا ابر محبوب نیست بله مگه برای اونا مستحیل نبوده نشدنی بوده دیگه اونا می گفت می دونستن که نمیشه بله خب چرا رو به کار نبودن بگن لیتا لنا کردتا کاش ما یه بار بر می دیگه اینقدر ناامید شده بودند از اینکه به دنیا برگردند و بهشون این اجازه رو بدن اینقدر ناامید بودند از اینکه به دنیا برگردند و بهشون این رو اجازه بدن دیگه حتی آرزوشم نکردند با لو گفتند یعنی همچین چیزی بگید شدنی نیست که لیته باید گفت ولی ما لیته هم دیگه نمیخوایم بگیم یعنی ما حتی حال آرزو کردنش رو هم دیگه نداریم لایته آوردن نه لو آوردن برای چی برای خاطر اینکه بگن ما اصلا حال و حوصله آرزو کردنش رو هم نداریم امیدی به آرزو کردنش نداریم این مثل مثال سوم همسله میشه که لوکان از آلکه ترا او یرجو فلو اندلنا کردن فنکونه که فنکونه فیل مزاره بعد از فای سببیت در جواب طلب چون لو به معنای لیت است در جواب طلب منصوب شده به خب یه همه مطالب رو گفتم یک درس باقی مانده ندا از انشاء طلبی که انشار الله تعالی برای شما خواهیم خود بعد وارد مباحث دیگری میشیم و اگر خوب انشار الله همونطور که انتظارش میله نگاه کنی خیلی لکات عدید و زیبایی رو جلی میشه شما باز میکنه سعی کنید که این مباحث رو خوب یاد بگیرید که برای خودتون تا آخر عملتون مفیده هر چی بخوانید ازش لذت میبینید همه رو خداوند صبحان میسپرم الله که در پناه اختالا تا آده هم قبول باشه. ملتمس دعا هم هستیم تا جلسه بعد خدا من و یاورتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکا.